بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل الله على سيدنا محمد اللهم محمد بيته المهديين المنتجبين اسنجم او الله الناحف السماوات و الارضين بالله من الشيطان الرجيم فان كان لابد من العنصبيه فليكن تعصبكم لمكارم الخصال ومحامد الافعال ومحاصيل الامور التي تفازلت في حل مجد و من بيوتات العرب و بالقبائل القبائل بالاخلاق الرقيبه و لا الجليلة العظيمه و لا الجليله و المحموده توفيق بسيار بزرگي است که در اين ايام و مناسبت به سیدت عالمین نسان صدیقه تاهر سلام الله علیها خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در محضر سخنان بیبدیل امیر المؤمنین به میهمانی شسته ای ما از خطبه نورانی سود و نبد و دو خطبه قاسعه استفاده میبریم. خاطر عزیزان استهزار دارد که امیر در قسمتهای نخستین این خطبه مبارکه شیطان به ابلیس رو خطبه این که موضوع اون اساساً معرفی شیطان به ابلیس هست از شیطان به عنوان امام المتعسبین، امام المستکبرین یاد فرمود و از گیجگی های شیطانی به خصلت‌های شیطانی را تکبر نام برد. تکبری که همراه با تعصب است. تعصب توضیح دادیم در جای خود که تعصب و عصبیت به معنای آن از که انسان پافشاری بریه امری می کند. به شدت. این پافشاری و تعصب و اصرار ورزی نوعاً به دلیل اینکه در اکثر موارد پشتوانه عاقلان و عالمانه در اون وجود نداشته است و در اموراتیست که شایسته و بجا نبوده است به همین خاطر واژه تعصب داوری اول و اون همیشه چیست منفی یعنی انگامی که شما یه تعصب کلمه تعصب رو میشنا، عجب آدم متأصبی است چه تعصبی دارد نوعاً تا به ذهن معنای منفی میکند انگامی که این کلمه شنیده میشه باحال اینکه این, این واژه میتواند هم کارکرد مثبتی داشته باشد هم کارکرد منفی داشته باشد یعنی ما هم می توانیم تعصب منفی داشته باشیم هم تعصب مثبت اگر انسان بر امر اشتباه غیر و آلمانی اصرار ورزی میکند با فشاری میکند میشه تعصب منفی اما اگر آدمی برای مقوله شایسته بجا و پسندیده، بر یه باور درستی برای رفتار پسندیده و شایستهای اصرار میورزد جدیت به خرج میدهد ایستادگی می‌کند این تعصب منفی نیست این تعصب مثبت است گاه ممکن است این تعصب همراه با افتخار کردن هم باشد تفاخر هم باشد حالا اونجا که است میشه تفاخر منفی اینجا که مثبت است میشه فخر مسبت پس بنابراین ما دو گونه تعصب داریم امیرالمومنین در لابلای این نکات و بیجگی هایی که فرمود که خدمت دوستان خاندیم که فرمود شیطان تعصب کرد بر اصل خویش اصلاح ورزیفت که من از نارم و تو از خاکی من بر تو سجده نمی کنم چنین و چنان. امام فرمود ثروتمندان و متکبران اقتصادی در طول تاریخ به ثروت و موقعیت مالی خودشون تعصب داشتن مالشون رو به رخ می و اصرار بر برطری اقتصادی خودشون به این شیوه داشتن خب اینها رو فرمود گله کرد از مخاطبان خیش که شما چه دارید؟ به چه چیزی دارید تصب میبرزید؟ چه دارید که به اون فخر میفروشید؟ توهیده است، خانی بدون شیعی چیزی موضوعی که عرضشون داشته باشد که بر آن اصلاب ورزی کنید متصبانی هستید؟ خشک، دست و خوشک، مغز کچنین رو چنان میکنید این یه گزارش کوتاه از دیروز از این فرازی که الان تلاوت شد امام می‌فرماند فإن فه كون من الاسبیه. اگر چاره‌ای نیست جز اینکه عصبیت و تعصب وجود داشته باشد در وجود انسان راه دارد این تعصب مسیری دارد این تعصب فلیه کن فلیه كن تعصبكم لمكارم اخلاق باید تعصب شما در این مسیر باشد، در این وادی باشد. من قبل از این که کلام امام رو باز کنم بیشتر توضیح بدم فقط یه جمله ای رو خدمت تنزیزان هست کنم که جهت تربیتی خیلی مهمه ایم. دقیق بفرماییم چه به شکل جزئی یا اون چه به شکل کلی یا اون ابعاد کلان اجتماعی یا خرد خانوادگی اون قابل توجه وارها شنیده اید و گفته این خدمت دوستان عزیز در شهر مقدس اسلام در قرآن کریم یکی از توصیه ها و واجبات معکد واجبی است که شما از آن تعبیر به امر به معروف و نهی از منکر می فرمایید. اما دقت فرمودید که در تمام مواردی که خداوندین واجب را مطرح می کند حق تقدم با چیست امر به معروف آنگاه به دنبال آن نهی از منکر را مطرح می کند یعنی اگر بنا باشد باب منکری در جامعه بسته شود و انسان ها از رفتن در یه مسیری صد بشن من بشن و جرودارشان بشیم. بشین اگر بنا باشد ما کسی را از رفتار ناشایستی نهش کنیم و بزداییم این رفتار ناشایست و منکر رو به تعبیر قرآن عملی نیست مگر آن که باب معروفی را قبلا باز کنیم ما اگر کسی با از رفتن در یک راه غلط داریم میگیم عزیز من این کار غلط هست اینشی برای عمل نکن تا زمانی که راه نوی رو و جدیدی رو و معروفی رو برای او باز نکرده باشیم که نمیتونیم نهش کنیم امروز دست بردارد باز فردا انجام میده و ارتکاب میکنه اگر ما راه معروف و باب معروف رو فکر زیبا و شایسته ای روش درستی رو برای اون تعریف کردیم نگاه نهی از منکر ما هم به جانس و روا خواهد بود این اصل مهم تربیتی است برای پدر و مادر برای متولیان امر تربیت در جوامع بشری نکته بسیار مهم و الگوی پسندیده است که خداوند در قرآن بدین شیوه در قالب این واجب متذکر می شود اینجا امیر بعد از اینکه نهی از تعصب می کند و آگاهی به این تعصب می دهند باب اصلی تعصب رو باز می کند اگر به ناز شما فخر کنید به چه چیزی باید فخر کنید اگر میخواهید خواهید اصرار ورزی کنید و چنین خصوصیتی در وجود انسان است که مصر بر مسائل و افتخار و فخر بر ای از مسائل می کند اینه قضیه بیایید من مسیر درست این تأثب رو به شما نشان میده حالا با هم مرور میکنیم که در چه چیزی امام مجوز تأثب صادر میفرماید فرمود باید این تعصب شما در چه چیزی باشد لِمَكَارِ مِلْخِسَان توفیق شد خدمت دوستان عزیز در همینجا بیست نوبت در طی دو سال هر کدام ده جلسه دعا زیبا بیستومه صحیفه سجادیه رو مکارم الاخلاق رو توضیح دادیم مکارم الخسال یعنی مکارم الاخلاق امام می اگر میخواد تأثب داشته باشید اصرار بوزید در مکارم اخلاق و مکارم خصال و خسلت های شایسته گفتاری و رفتاری و باوری بر اونها اصرار بوزید میخواین تأثب داشته باشید تأثبتون در صداقت باشید بگید سرم بره دروغ نمیگم این تأثبه این تعصب به جا آیسته است اگر میخواهی تأثب داشته باشید تأثب داشته باشید در این که من تن به قیبت دیگران نمیدهم ولو مادر عزیز من پدر بزرگوار من تو که قدوم تو بر چشم من است نازتو می کشم به تمام من لبت قیبت دیگران باز کنی مادر با تمام احترام مادران است بیشتو بلند میشم و در محضرتو نمی ن من این تحصب رو دارم مادر عزیزم حاضر نیستم بشنامم دوست عزیزی که بلاخره ببین این حرفی که می مهمه ما خیلی از گناهان رو با تعارف انجام میدیم از عزیزان خب نمی دیگه خجالت می کشیدم. طوری نبود از محضر حضرت باری تعالی خجالت نمیکشم. از محضر یه دوست رفیق آشناف خجالت می کشم و به تعارف دارم معصیت و گناه رو مرتکب می شن. نمیشه اگر تعصب دارید اینجا تعصب داشته باشید امیرالمومنین میفرماد در پای اخلاقش شایسته خصال پسندیده و ما دل افعال اینها اضافه مقلوب جنبه توصیف مقلوب پیدا میکنه یعنی افعال مورد حمد و ستایش شده در این موارد در کارهای نیک و شایسته جدی باشید و متأصب باشید افتخار به با اونها هم بکنید که بله من این چنینم چه تو اهل فحشا و فجور به فحشا و فجورشون افتخار میکنن رسانه این میکنن در سر و سر دنیا منتشرش میکنن تصاویر اون وجود و اون زشتی ها و منکرات خودشون رو تابلو و بلنگو میکنن شما هم خوبی ها و فضائل رو این کار بکنید شما هم بر اینها فخر کنید شما هم اینها رو جلد نبایی کنید برای تربیت جامعه محاسن دکتر و محاسنل امور سه نکتر محامد الافعال و محاسن الامور خصال اخلاقی که دارای مکرامت و شرافت و بزرگی است افعالی که دارای حمد و است محمود پسندیده است و محاسن خوبی هایی در امور امور خوب و شایستمنیک که موردی قبول و رقبت اجتماع و مردم است و بجا است سه ویژگی رو ما فهمودن یکی در اخلاق بود دوم در افعال بود سوم در اموری که ها در جامعه انجام میدن این سه موردی ای که التی تفاضلت فیها مجدا و نجدا اینها اموری است که در این تفاضل می‌کنند ببینید تفاضل باب تفاوت یعنی اون سعی می‌کند بالاتر باشد اون سعی می‌کند بالاتر باشد اون دیگری بالاتر یعنی رقابت در چی؟ در اوج گرفتن. نامش میشه تفاظت. رقابت در بزرگ شدن. به یه عزیزی همین چند روز قبل در زن شوهر خانم آقای بلاخله اختلافاتی داشتن این زن شوی جوان ای نبود که باید خدمت چون میبودم در شیراز از کردم به این دو عزیز خودم شما چرا بزرگ نمیشید؟ چرا بزرگ نمیشید؟ سی نزد ۲ سال سن نتون چه کوچکی اینقدر؟ چرا اینقدر ریزید؟ خرد می‌بینید؟ بینید؟ ماند یه کودکی که یه مقداری رشد کرده حجهت سنی تا آروف بهشون میگفتم چرا بزرگ نمی‌بینید زندگی رو؟ چرا با آینده زندگی نمی نمیبینید چرا توی اتاق در بسته تمام دنیا رو خلاصه کردید چرا در خریدن یه جفت کفش نمیذارم یه نمیذارم انگشتر و یه فلان تمام هستی وافرینشو خدا برای شما خوب شد یا بد شد مطلوب یا نامطلوب شد چرا اینقدر کوچک چرا اینقدر ضعیف کنه انسان خودش رو به خرد کنه که تمام زندگی زیبایی و زشتی اون خلاصه شود در این که این فرش دو در درصص یا سه در 4 است این که نمیشه زندگی این که نمیشه انسان به معنای اون واسعتی که در وجود انسان خدا بلنهاده است واقع سمانا که آدمی چنین خرد و متاسفانه ساده بین و ساده و کوچک بین باشد این که نمیشه اون موجودی که خدا به وجود و اون بر فرشتگان فخر بفروشد و جمال خلقت رو بخواد نشان بده این که نمیشه تفاضل اینه که انسان هایی میخواد بیاد بالاتر نگاه میکند از دیگران بالاتر بالاتر البته نه در مساحبی که تعصب منفی بود در جهات و مصمت و شایست فضیلت ها، عرضش ها، موقعیت ها، کمالات امیر المامین فهمون تأثبتون جایی باشد که تفاظنت فی حل مجدا و نجداغ میبینید مجدا و نجدا تو اون دارن اوج میگیرن میان بالا. کلمه مجدا جمع ماجد یا مجید است نجدا جمع نجید است ماجد و مجید از ماده مجد میان از شرف الواسع شرافت و بزرگی قامل توجه نوجدان از ماده نجید میاد و نفس اشجاع و ا اون شجاعت و توانمندی به اصطلاح نفس امام فرمود تأثب کنید در این سه ای که در این تفاضل میکنن سعی میکنن بالا بیان مجدا انسان های با شرافت نجدا انسان های با شجاعت و کرامت. من بویوتا تل عرب از خاندان های مختلف عرب و عجم امام چون بخاطبشون رو ابتدارن عرب خرار دادن می عرب من بویوتا تل عرب بعد می فرمان و یعاسیب القبائل کلمه یعاسیب جمع یعسوبه کلمه یعصوب میدونید از القاب خود وجود نازنین امام یعصوب و دینه حالا واژه یعصوب از کجا گرفته شده است امیر و به ملکه زنبورها یعصوب میگن امیر و بزرگ زنبورها را بزرگ زنبور حسن را یعصوب از اون رجا گرفته میشه و یعاصیب القبائل همینطور که میبینید بزرگان در قوائم مختلف های مختلف سعی می‌کنند اوج بگیرند، بالا بیان. شما تو این مواردی که موجب بزرگی، مجد شرافت، شجاعت، حمیت، کمالات هست. تو اینها باید تعصب داشته باشید. به اخلاق رقیبه و اخلاق و رفتاری که رقیب از ماده رقبت یعنی چی؟ میل فعل به معنای مفعول است یعنی اخلاقی که مورد رغبت و مورد پسندیدگی است و الاهلام لازیمه خیلی زیباست من ماجرا که عزیزان توجه جدی بکنید چطور امام سرفس میدن خیلی مهمه بیاید این تعصب و این اسرار ورزی و جدیت خودتون رو اینجاها صرف کنید به اخلاق رب همونطور که بزرگان اینطورن شما هم اینطور باشین اونایی که به اجزسین چیکار کردن راخواهی میکنم دو تا نمیدونم اینها سر داشتن چهار تا گوش داشتن چهار تا چشم داشتن نه این هم فرزندی انسانی بودن مثل شما مثل ما اینها هم همین امکانات بشری رو داشتن اما راه رو درست رفتن بی رو با راه اشتباه نکردن لذا توان و انرژی اینها در یه وادی صرف نشد که بعد بدونن غلطی برگردن مسیرشون رو اصلاح کنن تونستن جلوتر برن ما توی وادی رفتیم بریم اشتباه آزمون خطا برگشتیم باز از اول شروع کردیم اونا رفتن ما ماندیم این مشکل کاره و بله الا چه فرقی میکند بین افراد انسان تفاوتی در این جهت نیست استعدادها در وجود آدمیان و امکاناتی که خداوند به همه انسانها انیات فرمود است فرمود بیاید مثل اینها که تفاضل میکنن اوج میگیرن مسابقه در خیر به هم میدان میرن جلو باشید به چی بله؟ اخلاق رقیبه به اخلاقی که اصلا وقتی نگاه میکنید رقبت خوش به بلقی تو زندگیتون تو عمرتون فراوان دیدید میبینید باز هم میبینید افرادی که واقعا یه ساعت بایشون مینشینید امکان نداره قلبن دوست داشته باشید ازشون جدا بشید دوست دارید که این زمان یه ساعت میشد 10 ساعت اصلا نمیخواد جدا بشید کاش هر روز تا به و درس مینشستی با نگاهی پر از محبت شوق بر لبان تو خیره میماندیم گاه کسانی هایی که اصلا نشستنشون حرف زدنشون گفتنشون انسان احساس میکنه حکمت، لذت شعفه اینها دارای اخلاق رقیبه هستند. کار کردن با خودشون به اخلاق رقیبه این جای تحصیبه جای اسران ورزیست و لا احلام لعظیمه. احلام و, و مخلوم یعنی خاطرات خیالات افکار و افکار عظیمه نه افکار کوچک نه افکار سطحی و ابتدایی یک کسی فکرش اینه که نمیدانم از اینجا تا اونجا برود 100 متر قدم بردارد اما یک کسی اول که فکر میکنه روی یک کلومت داره فکر میکنه بعد میکنه ده کیلومتر این فکر رو و لا احلام لعظیمه کسانی که با افکار بلند زندگی کردن نه با افعار کوچک ول اختار الجلیده اختار از ماده خطر به کارهای مهم و جدی گفته میشه اختار و کارهای جدی صاحبه اهمیت رو اینها بیایید واندن دین بزرگانی که تحصوبشون تو این مسائل بود شما هم تو این مسائل تحصوب کنید ول آثار المحموده باز هم تکرار میکنم چقدر امام زیبا به تعبیر آیان آیتم بندی میکنه سرفست بندی کند اخلاق رقیبه اخلاقی که همه لذت میبرند و رقبت آن پیدا میکنه احلام العظیمه افکار بلند جدی نه خیانات کوچک و خردو که انسان دور خودش میچرخد وله اختار الجلیله کارهای مهم صاحب ارزش ولو, ولو ممکنه از همین ماده مخاطرات هم داشته باشه به تعبیر امروزی ها ولو ممکنه ریسک هم داشته باشه داشته باشه تفان ماست. چرا نریم جلو چرا قدم بر نداریم منی که میتوانم ده قدم بردارم چرا به یک قدم در روز قناعت کنم ولا اختار الجلیله ولا آثار المحموده تعصبتون در این باشه که از خودتون اثر چه بگذارید محموده بگذارید پسندیده و شایسته بگذارید بالاخره آثارنا تدل علینا بعدنا الی آثاری تمام وجود ما بعد از ما آثار ما میخواد خانه خدا باشد میخواد یه بناه خیر باشد میخواد یه فرزند شایسته باشد میخواد تعلیفی اثری نوشتهی خیری حتی سخنی یه مطلبی رو سی سال قبل چهر سال قبل شما از یه کسی شنیدید بهتون گفت رفته تمام هر یادتون میاد و به دوستان میگید خدا رحمت کنی این جمله فلانی برا من مون تو تمام زندگیم این آثار محموده ولی آثار المحموده از یک کلامی از یک نوشته‌ای از یه جمله‌ای از یه اثری فرقی نمی‌کند اخلا... اخلاقی باشد اقتصادی باشد اجتماعی باشد تو اینها تعصب داشته باشید که از خودتون اثر شایسته پسندیده ماندگار بگذارید که نام تون به دلیل اون اثرتون باقی باشد و جاودگا... جاودان باشید و لخلال لفلال الحمد حالا امیر المومنین این که گفتن به ما میخوان خودشون یه چند تا از اخلاق ای رو که دوست میدارد شیعیانش متعصده در این مسائل باشن پافشار بر این عمل باشند و این رفتار باشند، به تعبیر آمیان کوتاه در این مسائل نیان ده نکتر رو امام انتخاب میکند از میان صدها ها نکته این دهتا رو ما توصیه میکنه و فتح سبو مجووز تأثب رو اما در این موارد فتح سبو داشته باشید پافشاری و جدیت داشته باشید لخلال لحمد خلال همون خسال خسال همون اخلاق و رفتار حمد اینجا مصدر به معنای مفعولی است یعنی اخلاق محمودی که من میخوام بهتون یکی یک, یک توصیه کنم تا تعصبول خلالت هم یک حفظ للجوار ولی این توصیه که من فشاری کنید و جدی بگیرید حسن جوار را نیک همسایداری را از کجا همیر شروع میکنه در من به تعبیر امروزی ما از حقوق و آداب همسایه‌داری شهروندی امیرالمؤمنین المومنین از حقوق اجتماعی اون هم نزدیکان به حق آغاز میکنه نامه 47 نهجل بناقه نامه 47 همونی که خیلی قسمت هایی شایف سید که شنیدید امام گفت الله الله. شما را به خدا شما را به خدا الله الله فالقرآن الله الله في الصلاه الله الله في بيت ربكم الله الله فليتام عمرو كهمیر المؤمنین با فرق شکافته این نامه رو نوشته است او سین کما و جمیع اولی و زوریتی و من بلغه کتابی هازا به تقم الله حسن حسین فرزندانم به همه کسانی که نامه من تا طول تاریخ به دست آنها میرسد شما را توصیه میکنم به تقوای الهی و ادامه میدهد از اون پنج نکته این تعمیر المؤمنین توصیه جدی میکنه تو این نامه یکی همسایگان است بعد میفرماید اونقدر جدتون حسن جان حسین جان بابا اونقدر جدتون رسول خدا در مورد همسایه سفارش کرد که ما تصور کردیم که همسایگان نیز میراث میبرند به این حد پیامبر به ما پیروانش و اصحابش امیر می توصیه فرمود در همه من متاسفم این جمله رو بگم ببینید تو این عصر و زمانی زندگی می کنیم که عصر و زمان خوبی نیست عزیزن از جهاتی ادعای ما این است که دهکده ی جهانی هم کوچکتر شده است یعنی شما خیلی راحت مینشینید. تصویر صوت قشنگ ارتباط دارید زنده با این سو، اون سوی دنیا و دنیا براتون کوچیک شده درسته؟ یعنی فاصله ها رو ما در دنیا کم کردیم اما من عرض می کنم با کمال تصف عرض میکنم ما فاصله های فیزیکی رو در دنیا کم کردیم اما فاصله های روحی عاطفی و قلبی رو در دنیا زیاد کردیم از جهت ارتباط فیزیکی به هم نزدیک شدیم اما قلب همون فرسنگ ها از هم دور شده فاصله گرفت اون گرما علفت چهل سال قبل پنجه سال قبل توی محله همسایگان دوستان آشنایان دریقا فقط یه خاطره برای ما که اگر دردی به سر یک کسی توی این محل می اومد همه آستین بالا می زدن همه آماده بودن حالا این تو این مجتمع آپارتمان می میرد می ماند بیمار میشه. یک ساده نمیدونم با این سرطان دارد از بنجام نمیدونم فلان خبر رو دارد. هیچ کاری ندارد اصلا اطلاعی نداره ربطی بهش نداره نمیخواد بدون اصلا. سرشو بر میگردونه که اصلا مقابل این خانه چیزی هست یا نیست. عجیب اتفاقی افتاد است. دلها جدا تنها نزدیک. نمیشه ایم. این نمیشه، این نیست، به اون روح انسان نمی، این یه جایی منتجر میشه این حالت یه جایی بدونید بازتاب داره در جامعه بشه که شده هست الان نوارزش به ده درصد جامعه بشری تا پایان غرنبیستون ده از حد ده نفر یه نفرشون افسرده روان نجند بیماری شایی غرنبیستون افسردگی تا اون چرا؟ چون اونچه روح انسان بودن نیاز داره بهش داده نمیشه اونچه جسم نیاز داره بهش داده میشه نمیشه این میشه رشد غیر متوازن نه رشد متوازن رشد متوازن اینه که روح و جسم انسان با هم تغذیه بشه هر دو نیازهاشون رو بگیرن امیر این فرمود من الحفظ ال جوار یک من توصیه کنم متأثرب و جدی باشید در حفظ حقوق همسایگانتون و جوار ول وفای به زمان حالا این جوار که میگیم دیگه فقط جوار همسایه منزل نیست دیگه محیط کسب رو شامل میشه کار رو شامل میشه فضاهای این چینی رو هم میگیره دوم ول وفای به زمان دوم این موردی که من شما را به تعصب به آن دعوت میکنم وفاداری در زمان زمان زمین زمه یعنی چی؟ اهل و پیمان و تحود یعنی وفادار به تحوداتتون باشید بابا یه روزی سرمون گرم بود یه چیزی خانم بهت گفتیم دیگه حالا او جوانی بود ناپختگی بود یه چیزی روزت اوله نمی دارم. دو سال اول ازدواج بهت گفتیم حالا دیگه گیر نده به ما تو شوخی نداره المؤمنون انده شروطه انسان مؤمن مسلمان یا نباد لباس کند یا ایهاللذین آمنو لمت هبولون مالا تفعلون چرا میگید چیزی که انجام نمیدید وجود نازلینه صادقین باقرین فرمودن و آیه یعنی لمت ما لا مالا ان انتفلو چرا وعدهای میدید پیمانی میبندید که عمل نمیکنید و تصمیم عمل اون ندارید ما گلمون در اینه که اصلا پیمان نبندید عهد نبندید قول و تعهدی به کسی ندید بعد خب تعهدی هم ندارید مشکلی نیست اما اگر گفتید، نوشتید، امضا کردید، اعلام کردید نمیشه اینجا با جدی باشید، پافشار باشید و متحصب باشید فرمود و الوفا و دزما مخصوصاً بالاخره توی شراعتی که گاه عزیزان یه مقداری شرایط و متغیرات محیطی زیاد میشه بالاخره ما نمیتونیم انکار بکنیم و میبینیم شرایط جاری مملکتمون رو مؤزنات و گرفتاری هایی که از درون و برون بر ما تحمیل میشه وجود داره و من اهل این توصیه ها نیستم هیچگاه خدمت درستان عزیز اگر نباشد این نسیم دلانگیزی که از کوی سخنان امیر المومنین میوزد لب به این جملات باز نمی‌کنم. فرمود فمود ارحم من فلعاز یرحم و که من سما. کسانی که در زمین یعنی به بندگان و همنوع خودت رحم کن تا مورد رحم خدا واقع بشه. اگر انسان ها به هم رحم نکنن خدا به انسانها رحم نمی کند. ارحم تو رحم وقتی مقداری شرایط اقتصادی اجتماع اجتماعی زی و به نوسان ها رو داره دیگه اینجا عزیزان حقیقت ایمان خودشون نشان میده. منفعت خودش خودشو نشان میده شطور رو با بارش بردن مشخص میشه باربستنها خودشو نشان میده تعهدات اجتماعی تعهدات اخلاقی و ایمانی خودشو نشان میده یا افسانه میشه قصه میشه اینها یا اینکه واقعا دیده میشه و انسانی رو و زندگی ها رو نجات میده و رحمت خدا رو بر خلق و بر مردمان فراهم میکنه که تو این شرایط اجتماعی ما خیلی نیاز داریم که بازنگری کنیم در روش معاملات اقتصادیمون با هم به دبستانها و تعهداتمون نسبت به یکدیگر به مختصریه تکانی یه چیزی میخواد میبینید پناه به خدا میبریم بس است فرمود ذل و فؤه الزمان سوم و تا اثر البر سعی کنید تحصابتون تو تاعت بر باشه بر رو که میدانید همیشه گفتیم بر, بر بر بر هر ستا با زن و فتح و کسر به خشکیهانی بسیار وسیع بر میگویند بحرافرید و, و بر رو درختان آدمی خورشید و ماهو انجاب و لید و نهار کرد به تحدیر جنابشش بحر و بر بر قله الان اولین قله ای که در دنیا جابجا جا میشه و مورد استفاده 6 میلیارد انسان کدوم قله گندم به گندم میگن بر چون وسعت دارد مانند خشکی که وسعت دارد بر است حالا به احسان و نیکوکاری که فروگیره و وسعت داره چی میگن بر میگن بر به والد بر به والدین احسان والدین رو بر میگن گاه توجه دارید بر پس مناوری احسان فراگیل فرمود شما رو توصیه میکنم به طاعت بر یعنی اطاعتی که فراگیر در امور خیر باشه نه در یه حوزه باشه در حوزه دیگه نباشه چهارم و المعصیت للکفر اگر میخواهید تعصب داشته باشید در مخالفت با تکبر معصیت داشته باشید در مخالفت با کبر تعصب داشته باشید المعصیه دل کبر قط علم کنید به اصرار جدی متعصبانه مقابل کبر و متکبر قط علم کنید و نپذیرید افشاری کنید برای اینکه مقابل کبر افتخار کنید برای اینکه روشتون متوازهانه همست اصرار ببرزید بر توازویتون بر رفتار متوازهانتون ببینید نتیجه اون چه خواهد شد ول معصی ول معصیت دلکه ول اخذ به مورد دیگر تعصبتون و پافشاریتون اصرار ورزیتون بر این باشه که فضل بگیرید ببینید فضل یعنی زیادی اخذ به فضل یعنی گرفتن چیزی که موجب زیادی حالا زیادی چیه؟ زیادی شخصیتتون یعنی اصرار کنید همون جمله این که آمیانه عرض کردم به اون دو جوان گفتم اصرار کنید بزرگ بشید کوچک نمونید اصرار کنید چیز بفهمید تا فشاری داشته باشید در اینکه که افسوده بشه شخصیتتون خیلی نواز خواهی میکنم خیلی ناز خواهی میکنم با کمال پوزش بیچاره آن که کرره آمد علاق رفت آن که حیات حیوانی میشه. نه حیات انسانی بله هر این حیوانات رو نگاه میکنیم اقا تو مسیری که خدا براشون قرار داده است اونا رشد خوبی دارن به مختزای وجودشون همین زنبور از هم رو ببینید همین نمیدانم ارز عرض به خدمت پرندگان چرندگان همه اینا تو مسیر خودشون رشدی که تکوین و نظام طبیعی با غریزه درونی براشون قرار داده خوب تایی میکنن خوب رشدشون نمی کنم. همین بچه مورچه رو ببینید نمیدانم همین حیوانات دیگر رو ببینید به قایت رشد طبیعی خودشون میرسن همون که براشون میسور مقدور در آفرینش. نمیمونند مونن ناقص ها به قایتشون با تمام اون ابزارهایی هایی که دارن اما ما هم از تمام ابزارهامون استفاده می کنیم به اون قایت رشدمون می رسیم یا نمی رسیم اینو باید اصرار کرد ولعخز بلفاز مصر باشید تأثب داشته باشید که در که رشد کنید و بزرگ بشید و فوزونی پیدا کنید ولعخز بلفاز و عن من فکر میکنم این ده عبارتی که دارم از امام میگم دیگه همین ده تو ما رو کافیست همین ده جمله امروز امام همین ده کدی که امروز امام میدم همه چیز دین و دنیای ما رو اجتماع و فرد و جمع همه چیز ما رو میگیره درون و برون و من رو میگیره کف یعنی چی؟ یعنی معنی یعنی داری. و کف کنید از بند ظلم ظلم ستم کردن تعدی کردن از حقوق خدا و حد گذر کردن و تجاوز به حقوق دیگران اینجا اصار داشته باشید به هیچ قیمتی براتون ارزش نداشته باشید اگر هفت بخش وجود را هم به شما بدهند، حاضر نباشید پوست جوی را مظلومانه و زادمانه از دهان موری به دراوری. همان گونه که امام فرمود بعدی ول ازامل این اینکه بزرگ بدانید تعدیه به جان انسانها را به این سال دیگه نوجوان عزیز ما این بچه های ما از یه فیلم از اول تا آخرش دادن نمیدونم چار ست تا آدم تو این فیلم کشته شد یه سریال از اول تا آخرش میبینن. ده هزار آدم تو این سریال کشته میشه ده ده ده ده. گرفته بست است این آرتیست فیلم اومده است تو این سوپرمن فلان کرده است چی کرده است تو نمیرم اونقدر به چشم این بچه ها آدم دیده میشه که بالاخره یه جایی ارزش وجودی انسان در نظرشون چی میشه؟ تنزل پیدا میکنه خون براشون بیباها میشه بیحرزش میشه باها نداره دیگه این خون باها نمیشه باها نداره این خون دیگه وقتی یک انسان را ارزش وجودی اون را میبینید خداوند برابر با تمام وجود و من قتله اگر کسی یک نفر میکشد فکر انما قتل ناسه جمیعا جان یک انسان اینقدر ارزش داره در نظام ها فریش و دستگاه خلقت فرمود اصرار داشته باشید به حرمت وجود انسان ها و بزرگ داشتن قتل والانصاف فللخال اگر میخواد متحسس باشید و افتخار کنید به این افتخار کنید که با مردم منصفید. منصف انصاف فلل قام منصف انصاف همانی که به تعبیر ساده‌تر آنی را که برای دیگران میپسندید برای خودتون بپسندیدان که برای خود نمیپسندید برای دیگران هم نپسندید میشه انصاف. خدا این میخواد تو نمیدونم ازدواجمون بشه توی رفتارهای اجتماعی مون بشه تو به بستان اقتصادیمون مون بشه امینه چاست بالاخره در این مراوغه من همیشه از خودم مثال میزنم من معلم وقتی میخوام بیام وقت عزیزان رو بگیرم گاهی خدمتونی مثال رو میزنم من بالاخره براستون 200 نفر 400 نفر 500 نفر هزار نفر بخوان بیان یه صبحی بنشینن و عرض به خدمتون یه ساعت وقت در اختیار رو بنده بگذارد من هزار ساعت هزار تا یه ساعت مدیون شما فردای قیامت چونه میپسندم خودم اگر جای شما یکی از عزیزان باشم خب دوست دارم وقتی وقت وقتم اینجا گذاشتم یه چیزی دست من رو بگیره. یه دربی باز بشه از کلام امیرالمومنین المومنین سخن خدا و هر رشته علمی دیگری و من همونی که الان به جای شما بنشینم میپندم من معلم بایدو رو عمل کنم باید باشم با مد باشم به اونچه میخوام بیام بگم بنشیم بالا اسمدادمان داریم الان به ذهنم خطور کرد که این مسئله رو به شما دوستان بگویم معنی نداره شما مدیور قبلا فکرت بکنی مطالعت بکنی بررسید بکنی نقشه ذهنت رو بکشی طراحی بحث بکنی صرف کنی اوقاات رو هزار ساعت وقت رو گرفتن چقدر با کار کنی من متعهد باشه عزیز من نمیتونی که این نکانه مقدس برشینی و یه چیزی رو همونجا اخبار نشریه و جراید رو برای مردم بازگو کنی اون که نمیشه اون مردم خودشون برادن بهتر از تو خبرانده این رو نگاه میکنن به شما هم کاری ندارن خب چیزی گفته بشه که دری باز بشه که بشه تا دنیا این آخرتی و این فرصت ها این انصاف از اون درف بنده که زحمتی به فضل خداوند نگیر کشیده باشه جوانی گذاشته باشه ریشی سفید شده باشه بالاخره وقت خب وقتی دوست دارم وقتی زحمت کشیدم قطع این زحمت هسته بشه اگر کسی می نشیند و وقت میجوره اِی این دیده بشه تمام خستگی از تن وقتی به در میاد که ببینی نتیجه کار معلم داره دیده میشه قل لا اسالکم علی الا ان شاء ان بهی الى سبیلا باشد الا اینکه که یه کسی داره درست قدم برمی‌داره درست معامله می‌کنه درست حرف میزنه درست دبستان می‌کنه درست تربیت فرزند می‌کنه معلمین نفس راحتی میکشه پاشو دراز میکنه با قول غنی <تصفح> این چه تو این حوزه و بگی تو همه حوزه‌ها تو تمام ماباورد فرمود ول انسان انصاف با انصاف با خنق رو این اصرار داشته باشین آقا اون زن شوهر شوهر زن متأسف باشید در اینکه که با هم انصاف داشته باشید دقیقا آنی را که برای هم میپسندید برای اون دیگری ون انسان با خنق ول مصر باشید تو کزم غیز کزم بیخ مشک رو گرفتم گفت کزم تو سقا وقتی بیخ مشک رو میگیرن که آب نریزه محکم میشه کزم حالا اگر کسی بیخ نفسش رو گرفت بگونه این که این نفس پرخروش عصبی متشنج که هیچ هدایت ذهنی و فکری نداره چون میدونید غضب و شعبتون من الجنون غذب و قیز یه از جنون و دیوانگی است یعنی در حالت عصبانیت گاهی کارهایی ری حرفای زدیم که بعد به ما گفتن شما این کاری که میگیم آقا کجا من این کاری کردم من کاری این حرفا نشنم کی منم چی حرفی زدم میگن آقا ما خودمون شاهد بودیم شما این حرفه گفتید میگید علیها زبلنا که من این حرفو زده باشم ایشو تو منال جنون ایشو که جنون میشه این عصبانیت امام فرمود جدی باشید که درین که بی رو بتونید بگیرید بتونید کن از اون مقدماتش قبل از اینکه به آستانه تحریک عصبی برسید اقدام کنید این چه کظم پیشگیری کنید قبل از اینکه به اونجا برسید که نتونید از کنید نتونید جبران کنید تو این جدی باشید به افتخارم کنید به اینکه این چنین باشید و کظم للغیظ و آخرین جمله و دهمین جمله ای که امام در این جامعه می میکنند وجتنا بل فل فلاح و اصلاح اسراف دار شوشید به اجتناع بعض از فساد در زمین عزیزان من این ترکیب ترکیب زبان قرآنی است الذين يجتنبون كبائر الاسم عن فواحش قرآن نمیگه که ترک کنید کبائر را خوشا به اونها که کبائر رو ترک میکنند بلکه میگوید اجتنا به کبائر انتش تن بو کبائر ما تون فرق بین ترک کبیره و اجتناب کبیره چیه ترکشینه کسی انجام نمیده حالا شاید زورش نمیده که انجام شاید شرایط براش و الا اگر آب ببیند شناگر قابلیه اما اجتناب نه اجتناب از ماده جهن انسان سیاست گذاری هدف گذاریش اینه که اصلا در مسیر گناه قرار نگیرد نام این میشه اجتناب نه ترک اجتناب خیلی فنی تره خیلی علمی تره خیلی مهم تره تا ترک فرمود وجد به فساد فلعرز مصر باشید که مسیر و برنامه رزی زندگیتون رو جوری بکنید که به فساد و تباهی منتهی نشود اگر به ناز تأثیب ورزید ورزی کنید من علی توصیه میکنم که این نه ده نکته این رو که خدمت دوستان خواندم جدی بگیرید و چنین باشید و چرا من سریع قسمت کوتاه دیگه از سخن امام رو میگم که به جایی برسانیم انشاءالله بحث رو و ما نزل بل امم قبلكم من المثلات به سوء الافعال و زمیم اعمال و بندگان خدا گویا با همان روشی که در قرآن در سنت نازنین وجود و مبارک خاتم انبیاء محمد مصطفی دیده می شود دست پخت مکتب پیامبر و تربیت شده ای هم همانطور عمل میکنند آنکه گذشته آینه ای برای امروز و فردا باشد سیرو و فلاح کیف كان عاقبه الذين من قبلكم چشمتون رو باز کنید نگاه کنید گذشته رو بردارید بگذارید پیش روتون عبرت های اون زشت و زیبای اون رو ببینید و مشخص وحذر رو برحذر باشید از آنچه فرود آمد به امت‌های قبل از شما از چی منن مسولات، مسولات؟ از مدر مسله که شنیدید یعنی مجازات یعنی عقوبت از عقوبت که چرا اومد به سرشون به سوئل افعال به دلیل افعال و رفتارهای ناپسندشون و زمیم الاعمال و اعمال مورد مزمت و نابخردانشون و افراد اعمال مورد مزمت و نکوهش شده و نابجا فتذکر و فلخیر و شر اعمال هم متذکر بشید دیگه بررسی کنید خوبشون ببینید بدشون هم ببینید ببینید تربیت درست اونه که زشت و زیبا با هم دیده بشه خیر و شر با هم نه سیاه نمائی نه سپید نمائی. خیر و شر با هم وحضر و انتکون و همثال هم در هزار باشید که مثل اونها نباشید خیلی ساده زیبا یه فلسفه تاریخ رو وجود عمره که امام مشخصه چرا به تاریخ مراجعه می ما برای چی می تاریخ گاهی وقتی بالاخره این درس تاریخ برام ها اینج لذتی نداشت چرا چون میخواستن یه سری عدد آمارکی آمار کی کجا سلوکیان فلان اشکانیان کجا این بچه‌ها خسته می‌شدن بالاخره هیچ رغبتی به درس تاریخ نداشتن چون سریع می شد فقط یه صرف اطلاعات آماری اما اگر تاریخ با فلسفه تاریخ بیاید نقل تاریخ نباشد همراه با نقد تاریخ باشد شیرینه میشه شه نحنون قصد سواله این که احسنل قصد می شه یوسف فرمود وحزرو انتکونو امساله هم فی ازا تفکرتم فی تفاوت حاله هم وقتی نگاه کردید شناختید خیر و شر گذشتگان رو سعادت و شقاوت گذشتگان رو زمین خوردن و بلند شدن اونها را حالا فلزمون کل امر لزمت لعزته عزتو بهی حالهم ببینید راز موفقیتشون بزرگی به عزتشون چی بود وضاحت الاعداء له عنهم با چه چیزی تونستن دشمنان شیطان و غیر شیطان را از خودشون دور کنن و مدت الافیتو بهی علیهم با چه کاری تونستن عافیت و سلامتی و نیچ بختی رو بر خودشون مسلم کنن و انقاضت النعمت لهو معهم چه کار کردن که نعمت ها و فرصت ها براشون موند راز توفیقشون چی بود چرا موفق شدند و وسط کرامت و علیه حبلهم چطور کرامت و بزرگی ریسمان خودش رو دست اینها اینها گرفتن بالا رفتن حالا میدونید چه کار کردن من الاشتناب للفرقه و لزوم دلالفه چند تا کود زیبای جالب را امیر میفهمد یک من الاشتناب للفرقه اینا از تفرقه و تشدت اجتناب کردند و دل دل الفت و بستگی به همدلی رو ملتزم شدن و تحاظ ها هم رو به هم تحاظ از ماده هز، هست تشویق همون تشویق کردن به حمدلی محبت جدایی از تفرقه بدگویی زشتگویی و تواسیبه ها توصیه به این کردن بنابراین من علی توصیه می و وجتن بو کل امرن کسره فقرت هم توصیه می به شما مراقب باشید به اون چیزهایی که پشت اونها را شکست و پشت شما را هم قطعا میشه شکنه فقره همون که فقرات میگید. یعنی آنچه که بقام و دوام انسان سه تا نکته رو امام مطرح میکنن که اینا چیزاییست که کمر فرد و جامعه رو میشکنه ستون و فقرات رو له میکنه خیلی زیباست خیلی جالب من دیروز از کردم خدمت عزیزان ببینید 124 هزار پیامبر اومدن عزیزان 124 هزار رسیه پیامبر سیصد هزار انسان نخبه تربیت شده خدا و یا تمام مطالب اینها ها از حلقوم نازنین فرزند ابی بیرون میاد ما قیمتی برای نهجل بلاقه به عظمت حضرت زدی نمیتونیم تعیین کنیم یعنی میراث تمام پیشینیان از آدم تا خاتم اساره و چکیده اون در سخنان نورانی وجود و مبارک همیر و چه همد و سنایی بکنیم، چه شکری از خداوند بکنیم که روزی ما کرده است سخنان دل نشین و تعمل و تعمق و بررسی و هندیشه در سخنان دل وجود و مبارکه حضرت مولا را من دیگه به همین بسنده می کنم و استفاده می کنیم به مناسبت ایام. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.